الحمد <laughs> لله که مردم شیفه ها مثلا فرموزن از اونجا متعرض شدیم در کارده ششمش همش همینجور که به اصطدا متعرض میشیم اشکالاتی هم که درشنس اینشان با بیان میشه بعد میفرموین که بعد از عبارت مردم شیخ هایی ناگزیر کردن ذکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل اللامه که علل اولین کسی که این آن و تربیه حدیث علل تقسیم حدیث رو شروع آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر آن علل بمنکر طاوز گرفته سیده همونه سیده همونه از مرحومه سیده هم گرفته و ایشون مبدل این اختلاف خب علامه رو و از این رو علامه یا اصلابه گرفتن لیکن دقیقت اصطلافشون با اصطلاف اتداره سنت یکی می سابرن توزیده دیمونه در باض ایشون از مرحوم شیخ بهارین عمل می‌کنن در رساله و چیزه و تمام اینها و هم میانتهون فی الى الله الله علیه و آله فانا اولنا هم مثلثات من تلك البته این مطلبی رو که مرموم شکر با حایتون علامان ندر نه خیلی هم نادر نیست. اولوی در کتاب از غیر اهل سنده از غیر شیعه کمه. همون در غیر کتاب عربعه نه هم زیاده. و شاید نظر مقالده که ایشون در صدره باشون زیده عبارت که کتاب های دیگر هم ازم برند. شاید نظراتون در صدره باشون در کتاب عربعه بوده. در همین کتب الاروه هم داریم که به نحوات و دیگران به رسول الله میشه و مثلا من از کتب خاصه من الاحادیث مرگی یعنی تدید و على به کتیره عدد روایات ما بیشد یعنی کتب که کافی بیشد چیش رکه کتب عربع. راسته مطلبی که ایشون این محلب صحیح البته اونها هم جواب بیدن که این سه تو این موازین خاصی نوشته شده غیر از موازینی که شما دارید موازین ما با شما تحرام وقدره با رابن واحد طبعا کاری هم شدید با نوازی رو با کتاب روزه و با مجموعه احرامسی بعدیشون میگی وقدره با رابن واحد و هو عبانون و تبلیف امام واحد امن صادق علیه السلام. سلافین از حدیث 3000 هزار حدیث رو ایشون از البته این کلمه حدیث در اینجا غیر از حدیث در اصطلاح رسونده این حدیثی که ما میگیم و رو به اصطلاحه رسونده اونا فتوای اماموستاد ارخسام می کنند حدیث که ماینته هلاله شده چون این نوشته شده ممکنه علمای عامه این عبارت بخونند دیگه شماها کم یکمی خلط فرمیدیم من ای تو این توضیحات هست که انصافاً خود نباید خلطشه هم چیزی که به خودش و باشه جمع جمعه خودم ها و مهندسین و وصل علیهم من کلام علیمتنا علیه السلام فی عربرمه از کتاب تو سمه الوصول ظاهرش اینه که این عدد و محدود چهار کتاب که اصول عربرمه ما شده ایشون اسم نمیبره که از چه زمانی و چه اگر ایشان این باشه که 400 کتاب معلیم شده و آن به عنوان قسون ما الان نداریم مگر هم که کلمه کتاب بگیم کتاب, یعنی کتاب یعنی که کتب هاو شخص این امام یعنی به بیشتر بشه. سمت هست دا من المتخلی شکر الله هم به جمعه و ترکیب ها تقلیلن انتشار و تصدیلن اطلاقی تلکل اخوا فعلق و کتب المذبوطه مشتمل مشتمله علالعسانی در متصله و ثابت اسم تعلیم راست سند دارم کتب اربعه بعد اسم کتب اربعه او بوده و من علم سرور که رانم از این کتاب فعلا نسخهی در دست نیست احتمال داشت برده تا و شهر باشه آخرش افتاده باشه احتمال داره و تو یه دمان هایی موجود بوده خود من برای اولین بار احتمال دارم یک کتابی که اخیلن چاپ شده به نام نواده است. این نصفه مرموم شکوهور را آمدیست هست موجود نصفه ایشان در نظر در سبخانه حکیم شکوهور برش تملک داره کش نصفه اما نصفه بسرطه چاپ شده نسخه نواده و توضیحات کافی را به اون نصفه کردیم اون نسخه در افتیار مرمون بود خیال که کتاب حسین سعیده در کتاب بحار از همون نسخه نقل میکنه با عنوان حسین سعید معاصر ایشون مرمون را براملی از همون نسخه نرمان کنه برام نواد رخ مدر محمد ابن ایسای عشقی این از از عشقه از طرف دیگه همون نسخه به اینه ها در ضیل تخورزان هست و این که روایاته در ضیل تخور مجلسی هم از اون نمان فپضا. از اون ض تپضا به این شپ جگ فزار نشده من چند بار کردن این نسخه ای که از چهورضا چپ کردند اون نصفه کاملی نیست که زمان مجلسی از مککه آوردن به اسم فپزا این نابه این فقط قسمت ف کرده تقریبا تقریبا ن که رو حف کرد اناتتابی که بود. از سابقاً چاپ شده چاپ سنگی چاپ بزرگی شده در این چاپ سنگی و به زمینه مقنعی مرمون شیخ مطیب چاپ شده فقور رضا کامل که مشبه هم است انصاف اونه اونجا چاپ شده اینه که الان چاپ کردن چاپ جایی درام فقور این جزی از این کتابه از نصف بیشتره چون هم روایات داره که همی کتاب نواده ریا کتاب سنسایی ده. هم یه متفرگاتی داره و رقمان کدا این چیزای هم داره علایه کامل فقه که در زبان مجلسی یک از مکه ارمون سید آمدی میخوسنگ قاضی میخسن از مکه با خودش مزر در قسطهان منتشر شد و بعضها از خواب بحث کردن این همراه کتاب معنی شیخ مفید چاک شده یه مقدارش همین روایت اسامی رسانه در حدث ناغلامه کنان که خب بعد گفتن این میشه که او امام می کنه حدث او اینه که در این چاپ جدید اونا رو اون نوشت و حذف کردن نوشت کردن قرار بده. یه دفعه بیشتر در نظر و در مقدار بوده همین فکر من نصف باشه اون وقت این کتاب رو پس یک بار در ذیل شه رضا یک بار به با عنوان نواده را احمد بخصه شده یک بار به با عنوان سیارو باسمی سریعی بخصه شده خود رفنده داره اولین بار احتمال دارد که این پتری ای از مدینه علم باشه هیچ کنون هم تنه باشه چون روزو که قدرم نیست برای اولین بار احتمال دادیم که این یک پتری از مدینه علم باشه که از خواب ملتفد نشده حالا در حد احتمال توضیح این مساله و شرقش و هست. ولی خسال و امالی و رویون الاخبار اینه که بیتون پرموندن که اینا یه و اصحابنا اینا نه توی خیلی اصحابنات زیاده و امالی زیاد بله در کتاب از غیر از از این مردی از غیره اینه در این کتاب هست این هم بله مطلبی که از کتاب بازمانم شهر بهایی که تقیبا معاصر یه شده نرکنه و قال شهید و شانی هفتاد اشراس رو برگزی سن. از کان و هم رو متقدمی مصنف در اربرمهت مصنف خیلی عجیبی مطلبی که ابن شهراشور هر این بار در کتابش یک دفعه مثل ارسال مسلم میشه که عجیبه آور واقع این طور ارسال مسلمان این مطلب که هیچ سابقه در مسادر ما داره از خیلی مره اولین بار مرحوم شهاشو از در کتار معالم علمه و در شیف مفید نرمو که در عبارات شیف مفید هم نیست هیچ اشاره نیست ایشون یه امر متقدمین اربعمت مصنفل اربعمت مصنف سمور ها اصولن هم فکان علی ها اعتماد بکن. اگه سماورها به این, سم این معنا که بزرگان ما را رسول اصول گذاشنند، دفع و دفع کردند. شواهد حاکی که اصل نام کتاب نیست که مؤلف گذاشته. مثلا مؤلف نوتر سبب میشه حری بعداً گفتن کتاب صلوات حدیث اسمان این عنوان توصیفی است که بعداً به کتاب داده شده. ثم صداع الحال الی ذهاب معذره تلک اصول اینا هستن این وقتم ها جمان از اونکه کتب این خاصه تقریبا از در این در ایسی قرار رو بگیره و اصلا ما جمعه از کافی سفلی و استفسار من لاین زرگل ترمی کردم انصاف در تلمات این ها من از جلالت های اونتو داره ازن کافی گذینشیه یعنی انتخاب کرده ازایی این مدار حقاقیس که شاید نظرشون زن تحریر گواهی نیست اصولا تحریر خودش یک هدفش این بوده که هر چه روایت هست استفسار بونه معنیش در اول مشیخه در زده 10 طرح آخر تحریر میگه من سر کردم استفسار بکنم تمام روایات رو ما اصل شواهد معین نیست مگر استفسارشان اصلی باشه ما عبارت خود هم مصبت نمیشیم چون ما از هم روایات بسیار رو زیادی داریم که اولیشان بوده و ایشان نگه خیلی در محل خودش این بحث رو شدیم که ایشون که ادعای استخصا پرمودن ما که احساس نکردیم استخصار هم چهار جلد تحدید در جلد استخصار که چهار جلده فقط هدفش ذکر روایات متعارضه اصلا بحث استفساوی ها نیست که در دلیگ با متعارض در استخصار بوده من آید نظرم فقیل شده ببناش باز برگوزینش مثل کافیه من مثل کافی بیشتر منحقصانده مکتب برگاره و من لاید ظروف فقیل مکتب محتر بخبه. پس این که ایشون فرمودن مثلا جمعه نه این جمع به معنای اصطلاح نست نفرمیم <تصفيق> کافی میکن یا ترزید داره اما به ازاره فکر کنم به این 8% تا 9% درصد کافی تو فروب نه تو اصول تو فروب توی اترزیم نیمانه حتی تو روزشم نیمانه و شاید تحجب بکنیم بعض از ات احادیث تا کتاب کافی که آمده فقط در اصول بوده و اینکه حدیث معروفی زدارم شما خیلی مشروع و معروف شفت کلا ما رو زید نداری این هم حدیث ربه رفعان که مردم کلیت اصول رو در تو ایمانا گرفتند از نظر که ایمانا گرفت باشه از نظر که دوم ایمانا گرفته باشه شیخ تو اصول و شیخ فوسی عثا نایو ده مثلا به هیچ معنی نشنایو حالا در اون تفاوت خلاف متن ثلاثی که بین اهل سنت و ذکر بپاست تو بحث از اصطلاحیه شیخ طوسی رسم میکنه نه شیشتا تا نه نقطه حدیث منبلغه من و شیء من الصواب علی عمله حالا صدوق هم حدیثه و در کتاب طریع هم هست مرسل البته شیخ طوسی خیلی ماهر در تقیید نیست اصری خیلی کم درمیخونه خیلی کم خیلی ما در طریع به واسطه که شیخ طوسی کلا نمیقوله کلا مترجمه خود ترجمهشو میبره اما اونقدر نمیگه این شاید در خلال بحث و عرض می کنم کار و حدیث رو مثلا شهر سوسی نمید حدیث منبوله هم کنم افر. منبوله هستنی به غلامی کنم بره تسامح در مستحبا منبول شهر کلینی و برده به حصول کافی اونه که مید دن در که داری امان خوب برد شهر سوسی هم نید برده اعمال صدوق تو منبوله هستنی توی توابال اعمال رو برده توی, توی فقیر این برده شون. اینا ستبورشون اینه که مثلا در کافی هست و اینا بعد از کافی بودن و از قبول شده نه اینطور نیست, نیست. ما یکی یکی مطالب اکی می کنیم این توضیحات کافی و از در مرموم سال و سال خب همه عباده سال و سال نگو همون محل استشاه ایشون می کلام و شهید سانی و شیخ بایدین کماترها سریح اون فشهادت به سه حتی اصول و کتب المعتمده و عرض کثیر منها اما در این محله ما یه روشی هست در بحث این رو خوب دقیقه بکنیم ما کار حالا به نفائج نداریم خود روش رو یه بحثی که ما زیاد با این داریم این که عبارتی رو که ما از ببینیم آیا این عبارت باید حتما هم ببرد تعبد بکنیم یا نه خود ما هم اون مطلب میفهمیم احتیاج به تعبد نداریم تعبیر محروم ساهر وساید در اینجا تعبده سریع ما فش شهاده اینا شهادت دادن چرا شما هم فش شهاده تعبده قبول میکنیم و نظام ارز کردیم این استاد در مقدم معجم یکی از مبانی ایشون اینه که توصیف شهادت ده. وقتی نجاشی کسی رو توصیف میکنه این شهادت میکنه. خب خود ایشون با مشکلی برکر کردن که شهادت رو ها هستن باشه حالا نجاشی ایشون رو از در کسی که بیدی ساقر بوده شهادت میده سرکرده نگرانی جواب بدن که من در فالوازون بحثش این بوده یعنی پسیل مثلا مزاره یه فلانی سر از چون سال نادروسی رو شهادت میدن در شهادت هم تکیه از نمی شارزم دو نفر رو تکیه رو یکی حالا این عبدالحق میشینه که شهادت نه یکی هم کافی میتونه امام سال نادر داره میگن دو تا باشه وقت مثلا خیلی جاها یعنی علامه کتاب اننامه اصولاً جمعاوری کتب سالمین خودش کم داره مثلا در کل کتاب خلاصه مطلبی که در کتب سالمین نباشه کم انجشن گفتنش در خلال بحثا انشاء تشویقات در این, این و خلاصه 한다. او خیلی جا عبارات نجاسیش این عبارات نجاسیش مثلا چون سغت رو ابار علی الله هم علمو آورده. اما مرحوم صاحب مدارک اینو یک شهادت دیگه گرفت دو خیلیشته. یکی نجاشی که علامه به سؤال الانامات و بله. این کار رو ساربه و ساربه و ساربه انجام داده. اگر 보시면 که آی کوئی کار نکردن یا اگر خوبی‌ها کوئی علامه رو با نجاشی زمینه نکردن همین الان کتاب چون در کتاب صاحب وسائل قاعده 12 امش رجال خود وسائل این خاتمهش دو رجال داره که این مختصر الان واسه ادم اصلا ببینید مثلا میگم اشاغ نعما مثلا یا مثلا صاحب نوش منل خام ما رفتن سر گفت نجاشی علام علامه باید شیخ مجمویشی رو بوده چیزی دیگه از سالش نداره اینا یک مقناعی داشتن که این رو تعدد حساب میکنن ما اصطلاح هم بیرامیدیم مساده طولی و اینا رو تعدد حساب میکنم اصلا مرموم شیخ بهایی مطالبی فرمود که خوندیم یکی متن کاملش رو بندیم و که حضار شهیدستانی مطالبی روی به کتاب هرده فرمود روی که خوندیم مرموم نجاشتی، مرموم تا وسائل تعبیر میکنه که این شهادتون به سر حتی تلکل قصول من ام دست که که چند جا دیگرم بیشون تکرار میکنه شهادتون به سر حتی تلکل قصول و کتابل معتمده خب بحث ما با آیون سر همینجاستی موقعی احساسی اینه اینا رو ما شهادت نمیزنیم هم مطلبی که ایشون موسمون خود اون درک میکنه چیه <تصلاح> شهادت داره؟ مطاله دید که مرموم شهر باهی نرد کرده تمام رو خودمون میتنید چون شهر باهی کلمات خودمون رو اوکرات خودمون رو مان میبینید تحجیبه از مرموم صاحب بساره حالا پس این شهر باهی قبل از ما به هشتیار سال کلامی این نفر که قبل از ما به هشتیار سال بوده و مساقی همه مقابل شهر این رویشون شهادت برای تفاید تا قطعا میشون شهادت شهادتان چه شهادتی؟ همین ما کلی شو برای اول مراجعه این اعلام این تقسیم و علامه خود ما یه چیزی شاده نذاریه ما میدونیم اول اینکه کی این تقسیم کرده علامه است اینه که کتاب معروف علیه المرجعه شیخ صدوق قامو هم داریم این که اصحاب اجماع ما هم داریم چیز خاصی نشهادت مثلا شده و عرض به هر منها علی در این ما خود متحرک است سال و سال سال اینو با جلالتی شعنشون با یک جوری جمع بکنید کل کتاب هایی که عرضه شده برای ایمه یکی کتاب ابی حلوی یکی هم کتابی یونوس یکی کتاب فضلت اینش آزاد کل کتاب ایه و کثیر منها و عرض کثیر منها علی الامه علیه و سلام و فشهادت به اندال کتب الاربعه و انساله ها در کتب المعتمده منغولت و منتل کر اصول و ان ها کلا ها در هاتم به خراید قدیه من میفرمون اینو از کجا مرحوم سال و سال در آوردن اولا خود ما به همون اندازه شیخ باهایی از عبارت خود ما میفهمیم مفرم. که یک شهادت ایسیم درداریم خود دخلق مکنی مطلب که خیلی جای توجه داره حالا اینجا شیخ مشکل نداره مثل به شیخ باهایی ما این مطلب رو در میان کلمات سابقین هم نعقل کردیم مثلا تلحف نزد شیف میا آمین یا الا کتاب اون معتم دارم خب ایشون شهاده خب تلحفه بوده خب رو واسه پیدا بودیم شخص پیدا و نداریم کتاب اون معتم رو گرفتن از بحث کردن آیه که کتاب معتمدون ملافی که سره هست گفتن در کتاب معتمد باشه رفتی داره ساقت خب این بحث بسیار بحثی که این است که این کتاب و معتمدونی که شیخ گفته این تحبوده از آن در کتاب های اصولی که میده جالی که میخونه همه تحبودی روزن یعنی شهر شهادت داده ما هم نمیدونیم مسترش چی قبول بسته. آنجو مثالی که اصلا یادتون باشه در تعقل که یک کسی شما رو داخل یک اتاق تاریک شو درید شما رو بگی هر کی بشه، اینجا مثلا کتاب هنرزه، کتابی جالبسه. تعقلی هستینم یا آ چرا روشن؟ برو خود برو کتاب دیگه کتاب اونم کتاب رو نشون بدی. دقت می‌کنین؟ سلام در ما از کلیم اگر ش نکته‌ای در اختیار شده که ما نفهمیدیم، این میشه تعرض. اما اگه نکته‌ای در اختیار دارش شده که ما هم می‌فهمیم، که تعرض این چه ترابده زمین؟ مثلا شیخ گفته که ها موعتمدون یعنی در کتاب اصحاب ما از این آقا نمیده آقا براست ما میکنیم به کاغی مراجعه که باید تراجعه مزیده هست به فقیه به فقیه مراجعه میکنیم باید تراجعه مزیده هست بیده این چه از فهم الان برای جاگیه ها شیخ که کتاب ها موعتمدون این رو ترابد گرفتن ما مراسل کرارا این بحث کنیم. این تعارض نیست. چه تعارضی داره؟ خب اگر نظر شیخ این باشه که در کتب اصحاب ما روایاتش از اون ما میگیم مراجعه کنید. کتاب کافی مقابل ما یه وقتی عرض کردم، یه وقتی هم پشتو عرض کردم. این اصحاب یه عیب و هست که این توطئه مبارک در عمل حوادث واقع. خب اصحاب ما چیزی نگفته ازش. راجبیشن در کتاب میزان و لسان و میزان ابن از ادعای پی نمیشه از علمای شیعه در حلب بوده مثلا کتابش در اختیار فقه اهل سنی بوده نرسید. ما دونه رسید اصلا ما اصطلا نداریم خیلی عجیبه کتاب رجالی انداشته میشه ما اصلا کلا نرسید در میان درس ما نیست حالا به هر حال از شواهد الا بی میکنه که این اثر اهل مثلا یک تحریف از ما نرم کرده و کلینی اونو نفی کرده می دان بعد در از این اصحاب ما نوشتند که بعد این اسحاقی هم در کتبمون مشهوره اما در کتاب لسان میزان النحجر آمده از قول ابن ندیم ببینید این کلامی که ابن ندیم نقل کرده همون چیزیه که ما الان خودمون درک میکنیم اجدادون که ما از میزان میزان نگفتون ولی اون از ابن ندیمه اون امره وجاریه ما ابن ندیم میگه توقیع داره از ما توقیع ما این توقیع مرحوم اصحاب نهروب در کتاب روحبت شیخ توسی هست در کتاب در کتاب کمازی این موجود هم در کتاب احتجاج هست توقیه رو داییم میبینیم این دیگه اسمش تعبود نیست اسم این شیزا رو ما نمی‌تونیم تعبود بگذاریم به قبل این طرح این ایک مرحوم شیخ این ازدار مرحوم صحابه ساره شهادتون به سه حد تلکل تل اصول ام. اولا حس کردین خود و اصول رو عددی که ثابتو که بر بحث شهادت بیاد من ترجمه می‌گام داغ بعضی نه ها کله ها مخصوصتون بالقراءه متعدده اصولاً ما تصور نمی نمی‌کنیم این مقداری رو که مردم شیشه باهائی کرد چی دیگه اشو چیزی در اختیار ما حالا اگه بخویم تعبدن قبول بکنیم معیار تعبد اینه که مثلا مردم شیشه باهائی کتاب‌هایی در اختیارش بوده که به دست ما نرسیده خب میگیم حالا تحب بودن خود مروم اصطاد هم عقیقشون اینه اصلا اصطاد عقیقشون اینه که در یک نجاشی کتاب های در رجال بوده که به ما نرسیده اون کتاب ها از معاصرشون توصیف کردن اصلا فرص این کتابی در رجال بوده فرص که این معاصر با ابن فضال در اون کتاب ابن فضال توصیف شده اما الان دست ما نیست حتی ایشون نرزن بودن. من کتاب کتاب اصحاب ما در رجال داشتم قبل از نجاشی که نجاشی از اینها میکنه اما البته احتمال میدم که من درستا ندیدم احتمال داشت کسی برایشون نقل کرده ما قبل از نجاشی کتاب رجالی که اسمش کتاب رجالیه تو در مصادر ما مثلا خود فهرست نجاشی آه. یا فهرست شیخ طوسی آمده همه چیزها هم دیدی به 15 تا نمی‌رسه چرا 500 تا نه این از 500 اونم استاد از کجا نامه فرماینده پس معیار تعبود اینه این مطالبی که ما الان از شیخ وبهای خدیرو همش می‌بینی همش مصادر موجوده این چه شهادتی است که ایشون فرماینده بعد فرمایدن از عبارات کفعمی آوردند در عبارتی از مرحوم جنات واقع مرحوم کفعمی که فرمزه ها کتاب محترم علاقه و دعوات و تصابیر و زیارات و حجب هجاب استقابی برای مثلا از عدیه مثلا یا کاری انجام که محصر و تحصینات شبیه حجبه و هیاکل و استقاسات و احراز و سببات و احسان حسن اخت ما بکرده به استقارات من کتب معترضن علا سهتها معمونن به تمستو بله اینجا معمود نشه باید معمود باشه به رو که به واسه به واسه قهرتنا خب قطعاً باید عبارات ایشون حمله بریز نو تسامح بکنیم قطعاً مسادری که ما الان داریم چون ایشون دوز ماصادر متأخره یعنی وضع ایشون در قرن دهم و دهم چیزی نیست که نگذار باشه چیزی اختیار ما نباشه خیلی که از اتوبوس گرفته خب الان در اتوبوس مصادر شما بوده ضعف مصادر اینطور نیست نیستی محفوظم ما این روی حسن که ایشون داشته که مثلا هرچی کتابهای مثلا اوراقیم اوراقی دیده اینها مثلا درست باشه و بعد از مرحوم تدرسی عباره در اول احتجاج نهاره کردن چند بار اینو نهاره کردیم بعد ایشون میگه من صرف نهاره بردم لیل اجماع علی البته ادعای اجماع کرده ولی موافقتی لما دلت به اغول علیه علیه علی علی علی علی بود باشه علیه بود باشه چون دلت دلت, دلت به اغول علیه علی این یه ایل نوع محتب عقلگرایی هم از جمع بین حق و نرده ولی اشتهاری فسیر و کتب بین المخالف و الموافق البته همش نهید ادعش اصلا الان در دو جلد احتجاش الان موجوده ده حدیث وجود داره که با این متن و با این تعبیری که ایشون گفته در هیچ جانه آمده مانه حتی متن معروف حدیث قدیه رویشون به متن نرمونگی یه جیگه نداری طولانی حدیث قدیه محنی که در سابقه ایسا جاز آمد من دیگه باید درستش این اجماع احتمالا به مناهی تلقیه و قبول باشه لا انصافن بله ايشون فرق گفت الا ما اورت تو ان الحسن العلي عليه السلام این ایشون از تفسیر امام باقر در عمل کرده فعل نهو نیست به اشتباه علی حد سوا و اخیرا از همین مقدری از تفسیر امام باقر اول کتاب احتجاج هست. سندش هم ایشون به شیخ صدوق برای تفسیر در عمل کرده بعد فرزند انتل وقت شهده علی اقنو ابراهیم ایزا به ثبوت احادیث تفسیری خیلی شن مرمومه سال و سال باز اجل لازم باشه نگوسته احادیث من سه... سهیه بخصوه جمعی اما اورتو فیم اما روامو سقاط اصحابنا این سقاط نباشه و همه ها مرویتون همه سقاط برای این داره توش توی مقدمه تفسیر این کتابی که به اسم تفسیر بن ابراهیم هست هست و از کردیم مرحوم استاد فیما البته این مطلبی که ایشون نهار کردن مرحوم صاحب مستدرک هم تمثل کردن مثلا ابراهیم هاشم سقدر شون در تفسیر واقع شده اما تا قبل از استاد غالبا مشایخ رو میگفتن خب دقیق فهموندید یعنی معتقد بودن که این کتاب تفسیر نقلک می میکنه توصیل مشایخه. مشایخ مشایخ اصطلاحان استاد بلاواسته استاد اول اول سنم نه کل سنم مرحوم استاد دانا شد کل سنم فرق دارت همونی فرق, فرق بینید استاد به ایشون ظاهرن بیشتر روی جنبه کتاب حساب کردن که مسادر این با این تحبیر که من عرض کردم به عبارتی که در اول تفسیح علیه نبراینو هست یک خیلوم انطلاق من روشن شده سه تا احتمال اساسی داده میشه یک خصوص مشایخ دو جمعی اصطاد تو مرموم که اینا هم قاینا خود اصطاد هستی مرموم اصطاد هستی مرموم اصطاد هم روی تفسیر علی قبول داشن. و مرموم اصطاد این که اون عبارت نازل باشه به مسادر هستن نازل نه نه به مشایخ و نه به روات به اصانی هیچ کدور یعنی مسادر ای که من ازش نرکلن مسادر قابل احتمالی این راجع به این قسمت عبارت ایشان و اما اصل مطلب اینه که اصلا این عبارت مال علیه ابراهی می اینسال این احتمالات رو برسید. من توضیحات کافی رو عرض کردن علی بن ابراهیم رحمه الله تفسیری داشته محروم کلینی شایده ایشنادشو نرمون ناری میکنه و اون تفسیر در اجازات ما وارد شده و به احتمال قوی تا مدتی هم موجود بوده چون محروم سه این تابوت تفسیر نرمون میکنه رضوان الله تعالی اما بعدها یک کتاب دیگری به نام تفسیر علی بن ابراهیم جام نفته که این کتاب موجود که الان به اسمه تفصیل علی ابن چاپ شده ما کران توزید داریم قرطه و جلمن مال علی ابن ابرانیم میست در این داریم کتاب کاملا واضحه که مال علی ابن ابرانیم این که قفیلیست اما حالا مال چیه بردان این مداری داره و قرطه کسی که به کتابه اصولا علی ابن ابرانیم را نکرده از معاصرین علی ابن ابراهیم مثل محمد بن یحیا رو درد کرده که از مشایخ قومه اما خود علی ابن ابراهیم درد نکرده حالا احتمالا در قوم نبوده وقتی آموز قوم علی ابن ابراهیم خود کرده بوده لذا تفسیر علی ابن ابراهیم رو به یکی نسخه چه از سادات موسعی در قوم بوده نامه اباسب محمد اباسب محمد یه نوشه از تفسیر علی بن ابراهیم از این از این شخص نام این شخص رو نمی‌شناسیم کلاً آشنا جورش نداره تو قم بوده شاید خود به انصاب اسمش هست خود در جهان اسمش نیست تو کتب روایات 4 5 تا 6 تا از کلاً روایات در مثل الال الشرایع یا خصال صدوق باشه خصال نعمانی الا شایعه که از این شخص نام کرده از این محمد ما دیگه آشنایی از این شخص نداره. پس بما بر این معلف کتاب هر کی باشه احتمال این که علی ابن حاتم باشه خریفتر از بقیه هست ایش اون که به آمده علی ابن ابراهیم زنده نبوده تفسیرش تو تفسیر این محمد نبود اون مقدم هم مالی این شخصه همون جناب آقای بس در علی بن خالد نگاهش میکنی. مردم آبوزور بعدها اتفاقش این شد که مالی این جام از اسمی ابّاس بن محمد جامعه اکتاف. تقریبا میشه که اما اولین کسی که متخرتم شد این تاریخی اولی ایشان نیز مال شصت دیگه است. اما آبوزوری را دست الله مات. و مشاورم چوزی این دادم. مردم آبوزور خب اتفاقش اینه اول که زری در مثل میشه مشهور بشه. اول علی بن ابرو نگاهشی دل. بعد این چاپ نجفتن این چاپ دو که این آیت جزاییز واقعا تحقیق کرد چاپ کرد به این نصحه که من با ما گرفت من دیدم خانشون رفتم برای صورت ایشان ایشون با خط قرمه در جدا کردن با خط وقتی اسالی رو خودیشون ملاحظه کردم پرنه این تفصیل علیه نورمی ایست واضح کاملا همه واضحیه هم اولین کسی که متفتن شده من همه آبزوریه ظاهره هم حساب علمه هست لاغل حساب ایشون تصورش اینه که این کتاب رو شخص همیه عباسد محمد نوشته تصور ایشان اینه اینم درست نیست اصل تفتن ایشان خوبه اما ایشون راوی کتاب تفسیر علی ابن کتابه. در این معلف کتابه که نمیشن سینش این عبارت که روایت ممارا و از حابنار این مال همون قدرینیه این عبارت رو اون گفته این اون توصیح میکنه توصیح مال علیه نربانی نیست این عبارت توی مقدمه آمده و مقدمه رو اون آقا نوشته البته ها اون از کجا گرفته از اون مقدمه رو جدیدی از رو باید اون بخش مقدمه شیم آخرای مقدمهشون من رو بران وارد سودی طولانی بشه ایشون نوشته و عرض می‌کنم بعضا تا آخر عمر برنگهرین از این مطلب توضیح رو اینجا ارائه بکنم اون آقای علی ابن خاطر قزوینی نوشته که جمعی اون که در شده از ثباط ثقات،, ثقات اصحاب راست این عبارات ایشون داره با این مشکل فرعلا تقدیر این که این ترجمه ما درست باشه و ایشون سال کتاب باشه ام ولی خودشون سرگرم کننده است، لکن یه ربع نزدیکه. حالا حمدالله ی مردال ما آسانی دیشون البته نه در کتوبه مسعود، در کتوبه محسن معمول صدور. علیه نهاتم قاضی یه مردالی آسانیش داریم، خیلی در غذا بودن آسانیش نیست، خیلی برش واضحه. انصافاً یک کارش معمولی که ترسیاری می‌کنند، از شدت مجبوری بنام محمد خب، پس ما کلین هم چون کلینی در کردن علیه ابن حاتم غزینی متوفای 350 چون کلینی رو دیده خب ایشون میدن از کلین نرمون کن مثلا تفصیح دیدن یه نصفه صحیح و درست درمونی از تفصیح نرمون کردن نه یه نصفه در آبونی که واسطهش هم روشن نیست و بعدش هم در خود کتاب اسناد زعیفه داره تا اصلایی که در شبایی وزده مثل حسن علیه نوی همزه بطانی و خود علیه نوی همزه بطانی از تصیل این دونقل نروی میکنه حالا من دیگه اینطور اینکه توضیحات کافی رو به کتاب بدم و هر حال اون وساقتی رو توصیح روی که ایشون کرده اولا حد نه به اقلش اینه که ما شخص رو نمیشناسیم موسطه بدن احتمال این که علیه نحاتم باشه قویه خود ایشان توصی توصیقات خود ایشان ارزش نداره این خلاصه بحث به این تفسیر و این شهادتی که ایشان در اینجا پرموزن و اضافه بفرمو به این مقدر یه نکتهی رو من چند بار عرض کردم یه بحثی که خب بسیار خوب این اون تفسیر نیست چه از چه زمانی این کتاب موجود به نام تفسیر علیه این راه افتاده مثلا زمان سال و سال هم. همینطور شون و سال ازش تا که من نگاه کردن ولی علم و اندالله ترین شخصی رو که ما میدونیم از این کتاب موجود این شرطی داره شرطی دیگه به نام تفسیر نارد کرده یکی از علمای هلرس شاید شهید اوله حسن بن سلیمان هلی کتابی داره مختصر و کتاب بسائر یا یعنی المنتخبون کتاب بسائر ایشون در اونجا آورده از همین تفسیر موجوده رو دقیق میکنیم اما سیدن تاوز از اون تفسیر اصلی علیه این نربانی بعد از بعد سیدن تاوز به دیویست سالی و دیوی ساله تا اونجایی که ما میدونیم به این آقا برمیدیرده حوضه هست سال اولین کسیست یعنی حدود الان شیست ساله خمسال ساله این تفسیر به نام علیه این در بوضای ما جا افتاده این کتاب رو موجود که شیخ و هرومر و مج مردم آیت‌ها و صوایتی که دائما ایشون مخالفه. از دسترسی آلن روایات ناجور و ناموناسی یعنی ریان داره یه نام نه می‌دونم آیا آیت‌ها و صوایتی بکنی یا نه؟ اما نه، بله این رایتی نیست ما سراغ من نمی‌خوام این جمله‌ایم باش بیشتر تفسیریش، اما مردم آیت‌ها و تقریبا تقریباً اللهم تفسیر اونجا داره. اونجا که کم نگیزده ایشون نعری کرده و فی این هم لجیب تفسیر اجمالاً. <تصفيق> بله جو فنا علی تمامه دلاله آیا المماله علی برای بله های ابو محمده؟ سمال شما گفتید من نمیخواستم وقت تلفش فرعونی است کسی الجاز هم هست احساس کنند ابوزر تصور کرده که اون که ناقل از کتاب اول الجاروده همون ابوالعباس محمد موسوی که از سادات موسوی ما توضیح راوی از این کتاب رو جالا باز خود عویرنه ها تنگه اشتباه نابس راویش اونه نه این این یکی نیست. علایه حال راچه به این کتاب چون متسلن احتیاج به صحبت داره فیران جاش اینجا نیست اقیقا مثل یک کنفرانسی همایش هم. همایشی, هم. همایشی هم برای چون بود یک چیزه اینچهار کردن و کدالکه جعفران و محمد ابن قولبه از ارز کردم ایشون هم ای. است. بخلی. چون یک چرایی سنگینه من دیگه من این خلق شو می مثلا سی بویه صحیح سی بویه هست این اویه در زبان فارسی یا نصفت می دهد یعنی سی بی مثل سی یا هم که یک فرصی مثلا در زبان عربی مثل بغدادیان اونجا بغدادویه می گفتن یعنی بغدادیان گلویه معرب کلمه گل گلویه یعنی مثل گل ورگیان به صور عربی و محمد ابن قولوه فی این سر به ماه و ابل اون ازداله اول مزاره دیگه شناجم تفسیر صحبت کردیم کتاب مزار ابن قولوه این اون عبارت هم مال ایشانه و که عبارت ایشان فوق العاده مجمله فوق العاده مجمله این یه من نیمه هم بارده و محمد استاد معتقد بودن که این توسیق جمعی اصنده سه احتمال هم تو اون عبارت هست توصیق جمعیه سند باشه توصیه مشایخ باشه و توصیه مسازری که ازش کرده کاری به سند نداره به استاد نداره اون مسازری که کرده اون مسازری که قابل اعتماد منه هیچ ناظر بیشتونه دو نباشه و مرحوم استاد کردیم یه شما چون ایران بود اون وقتی نجف نبودن چهار یا نه به نظر شده چهار سال قبل از وفاتشون از این مقناشون برگشتن در وقتی مراجعه کنی به کتاب خیلی احادیس مرسل و زعیب و موضوع و جهت، مثلا افراد کزاغ و وزاغ لذا نیمیشه بگیم این عبارت نازل لذاشون در اون اواخر عمرشون مقناشون به شد لذاش از دیشتاد برگشته دایشون قبل برگشت بودن از محاصرین ما ایشون هم بعد برگشتن گفتن خصوص مشایه م لیکن از کنین مهدشتا به احتیاج به بحث داره احتمال این که هر دو مراد باشه هم مشایخ و هم مسادر قویه دیگه جایی بحثش اینجاییست البته کتاب بن محمد ازن قولوی کتاب مزار هم شکیشون فرمدن حادث زعیب و حتی بعضی از کذابیمون مثل, مثل عبدالرحمن بن حبی عبدالله بصری پسند در شاهده شنشتن کتاب مزار موضوع آنستن جعلیه کتابی خیلی از همین کتاب نعروب کنه الاسم الاسم از هم نعروب کنه دیگه توضیح این مطلب چه طول میشه ایشون از حتی از افتادی که متهمه به جعل و وضع و کذر هستن و در خصوص مزار نقل کردن احتیاج به شرحی داره که هم نه وقتش اینجا مسائزه و لکن با تمام این حرفها با تمامه این مساله که مرسل رو زهیر کنه زیاد داره انصافن در رشته مزار نسبت به خودش کتاب خوبیه نسبت به خودش نفرد رشته مزار تو غالبا احالی زنیفه نسبت به خودش در رشته مزار کتابش کتاب و خوبیه انصافن درراق بین این داره که عظمت علمی این شخص نسبت به این رشته رشته مزار معلوم میشه روحن رفته احوالش خوب زیاد داره و قابل اعتماد زیاد داره به هر حال دقت نظر ایشان بلا واژه حدیثی قابل تغییره حتی از اون جاهایی که از این کثوب مبعوله و موضوعه مثل نزار اصلا بحثی نال کرده قابل توجیهه حالا من اشاره گفتم توضیحش باشه بحثی که داریم و فقط می‌خوام اینو بگم که خود مرحومای خویم اواخر عمرشون برگشتن که این کتابو قبول بکنه و انصافاً وسائل باید توضیح می بده وجود یک دفعه کذاب وضع متهم به که و وضع از کلمه درجات تذکیب درجات کذبه و وضعه دیگه ما از این احبابا ندارم اش رو می که اصلا کتاب در مزار موضوع مجبوله خودش دروسیت و منظاره در کتاب کاملا زیاد وجود داره این رو نمیشه بگیم شهادت میده به سبوت این روایات انصافاً بگیم می